بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله عبدالعالمین صور الله الله و آله طیبین و طاهرین و لعظه دائمه تعالی انجای اللهم افره نافره ناموشه ارحمن و احمد روز مرحوم دیگه تا اینجا بحث رو در باقی تنجید علم اجمالی یا مقام عنوانه بحث از علم اجمالی که ثبوت فکیف از بحث در ثبوت فکیف که بحث از ثبوت ما این بحث رو که این چندوز بوده جمعا جور بکنیم تا برستیم به شرایت تنجید که مرموم نایمی در اینجا آوردن به مناسبه از شد که اولا در نظر گرفته بشه که مبنای آمیان علم تفسیری رو علت تامه می برای تنجیز اگر انسان علم پیدا کرد این دیگه علت تامه مخالفت نیست مواقع از و همون بحثه ایش بودش این یک نقطه نقطه ای دوم بحث که اساس این بحثه اینه که اگر یک نهره اجمالی به لحاظ متعلق پیدا شد به لحاظ خود تکلیف اجمال نیست علم تفصیلی از کلی از علم اجمالی اجمال در متعلق نه در خود علم در این که دید یک خطره خون افتاد که اجمال نداره در متعلقش این انا یا اون انا اون زاویه بحث اینه به خاطر اجمال متعلق در مقام تنجیز با علم تخصیلی خمه می یا خلاصه بحث به خاطر اینکه یک ای نوع اجمال به لحاظ متعلق بود داره این اجمال متعلق تأثیر داره در تنگیب علم بیگه این علم مثل علم تفصیلی منجز نباشه این سوال جوابی که اعلام داره در این جهت سه ساستی که یکی اینکه که هی شام تمام اون نقاطی که در علم تفصیلی بود در این جام هستی شاهم. این ما معمانسیه علت ده تا محض ده این اجمال هیچ شأنی ندارد نظام موافقه قطعی واجب مخالفه قطعی حرام یک خارجی شان نمی‌تونه شارع ایجاد بده چون در علم تفصیلی میگوشن شارع نمیتونه بگه انجام بده بدون تصور دادن هر میکنه خب اگر در علم تفصیلی نشونه در این اجمالی هم میتونه واسه اینا چه مشکلی نداره نه در دو طرف میگیم که انجام بدی نه در یک طرف این مبنای آزیا کمایی که در علم تفصیلی لا تنال و ید و جن لا اثبات و لا نفی تو این اجمال هم میتونه شراس به بلا علم ایلو داره دید یک قصه خون که اجمال هم داره که اجمال در دو طرف پیدا شده، اون ایل تأثیر داره شاره هم نمیتونه دیگه انجام بده هر یک پرست ترخیصه در مخالفه از طرف شارع ولی ولو مخالفت احتمالی پس این مبنه اول رو شد این مبنه اول در این اساسه که علم اجمالی اینا علم تفسیریه هیچ فردی با علم تفسیری نداره چرا؟ چون این اجمال به لحاظ اجمال متعلق در تنجیزه علم هیچ اثری نداره همچنان که اونجا علم سامن بود اینجا علم سامن است اونجا شارع نمیتونه باشید نمیتون اینجا نمیتون حتی در حد مخالفت احتمالی یا موافقت احتمالی این محنه افر دوم دوم محنه مرحوم ناینی که این اجمال لاعقل این تأثیر رو داره که دیگه مخالفت احتمالی اشکال نداره شارق میتونه ترخیص شده در مخالفت احتمال روشن شد مخالفت یقینی نه چرا همین این اجمال این اجمال ترده شده چون این که داره داره یک نجت هست شارع میتونه اجازه بده یک طرف انجام بده یک طرف انجام داده این مشکل داره پس زخته پنی روشنه نقطه پنی اینه که این اجمال چقدر تثیر در تنجیز؟ داره سوال تثیر داره در تنگیز محوم آبنایی میتونه بر تحصیل فرق بین اجمال و تحصیل اینه در تحصیلیده هیچ رای شاره نمیتونه اجازه بده اما در اجمالی در مخالفت احتمالی اجازه میده بگه یک طرف فرق بکن یک طرف بگه رو بخورم اصلا این مبنای دوم مبنای سوم که ارز کردم مثل مرحوم علامه مجلسی و ازدهی به خاطر این اجمال هر دو طرف رو میتون تشخیص بده اصلا علم اجمالی باش شبهه بدلی فرق نمیکنه کنه این مبنای سوم. خلاصه کلی این که اینه سوال اینه این هر بین اجمال و تفصیل چیه به خاطر اجمال یک فردی میشه سوال اینا میگن برد, برد فرق میشه؟ این اجمال روشن شد منشه میشه که این علم شما به منظره شبه بردیه باشه شک بردی باشه شما میتونه هر دو سرفتا انجام بده پس چند تا رعی شد ستاره داریم بعد بست این اجمال در تنجیب معنا علم منجد علم تفسیری حالا اگر اجمال آمد اجمال هم اند کردیم به لحاظ علم اجمال نیست چون یعنی داره بخش میدونه خون افتادی که دیگه بحث بخش که به لحاظ علم اجمال نیست به لحاظ متعلمه این اجمال متعلق سوال هر کی کنه با اونجایی که متعلق منجزم نیست، هر معلوم نیست. دیالو مرد شرم میکنه. شارع نمیفرسته تا رو کنه. که در علم تحصیلی میتونه، تو علم اجمال نمیتونه. حتی مخالفت احتمالی هم نمیتونه. میگه یکی که انجام بده یکی چه میگه؟ این علمه را سه علم تحصیلی است ایچ فرق باست نکن مرموم نه فرق بکن. این اجمال تحصیلش اینه که یک طرف دیگه انجام بود یکی برگ بکن یعنی این اجمال منشأ میشه که شارع اجازه بده مخالفت احتمالی شارع میتونه بگه تو میکنی مخالفت احتمالیش کنم این مبنای دوبه مبنای سوم علم اجمالی هیچ اثر نارم تو شک وگیر مونه هر دو سر بمیتونه انجام. بزید این هم مبنای مثل مجلسی و عزیز از افقاها هم دارید بزن شاهر دروس اینا باید لیستی از اسماهینا سابقا گذنم کنانو فراموش شدم مراجعه نده این خودم میگه این روشن گیستی در نیستی نیستی در نیستی نیستی تأثیر این علم اجمالی این اجمال در تنزیه علم خب هر فرض بگید ببین به خاطر اجمال تو تنزیهی پر می‌بیناشو خلاصه شد به این که معنا یک اجمال منعشر میشه به شکک بازی کلیت علم ایمان نیست دو اجمال سبب میشه که مخالفت احتمالی را شارع اجازه بده سه اجمال هیچ تأثیر نداره اصلا نمیتون حتی مخالفات اجماع احتمالرم شار اجاز بد ن سهتا مبناع اس اثر مرهوم استاد بان بیان ک من ار کردم در مصباه اصول ننوشتم اما من حیث المجموع از کلمات شون معلو مش مبناع آضیا دارن علت تامه میدونم من حث المجموع از کلمات یشان انطور من استظهار میکن لا تسریح به ان مبان ندم ان راجب مبانی اصحاب و کلمات اصهاب که تا نجا بد اشکالی که ما اون مدنی که ما از تنه مثلا اولا اون علیت تامه علم تبدیلی ما داشتیم چون در کلمات اصحاب آمده علم علت تامه داره تنگیز لاره روز و لا تنها رو بیا از یه که گذشت و توضیح دادیم و سر و رو را عرض کردیم هزارات علماء حجیت و تنگیز رو دارمدار کشم یعنی حجیت یک امر ذاتی ایک شیعه میبینن از خارج جعل نمیخواد بشو بخوره لذا مثلا در معامل چون کاشفیت شامعین کشتره دیگه حجیت هست دیگه نمیشه مثلا جعن ما چون گفتیم حجیت یک خهم یک نقطه اغلایی یک خریده اجتماعی این قابل کرده این اختلاف اساسی ما البته زیربنای بنا این حجیت کاشفیت این هست یعنی کشت بود خواهی خیلی راحت جهن حجیت میکنه اما این نیست که حجیت مسابقه با باشه. آنها میدونن این, این سر اون زاویهی که ما با هم با آین اختلاف کده کردیم این رو... اینا حجیت رو امر داخلی و ذاتی میدونن برای کشت ما میگیم حجیت که هم رو اغلالی از وقت این هست در واقع به اصطلاح موضوعات و شباز موضوعیه. نگه موضوع موضوعیه مگر مانع خاصه حجیت اع ثابته چرا من توضیح دارید؟ به طور متعارض قوانین تو موضوعات دخالت نمی‌کنن این موضوع متعارضه شأن قانونی نیست که تو موضوعات دخالت بکنه این مایه مثلا شمره یا این مایه عامه کار قانون نیست. کارش این نیست اما متعارض هست که قوانین بیان توی بحث‌های قانونی دخالت بکنه چون طلب سوزی که من ازدن کرارم حجیت در مرتبه سرومه اول مقام جنر در مقام ابلاغ در, در مقام حجیت حجیت این یعنی مصول تکلیف به مکنم این اسم تنجز. این تنجز این در مورد قوانی چون میاد قوانی حساب مستم ممکنه افراد فنگ سادهی باشه ساده باشه خیال بکنیم قانون این میان یک زوابه که حرام میدن میگن آقا قانون رو از این راه قبول از غیب این راه قبول. شما از خیاس و استحسان و مسائل و, و از یه حربا اگر آقا قانون بتنید رو این ممکنی مشکل ندار به نظر ما مشکل ندار این توضیح دارید, دارید. پس این قسمت که اول کار ما با آقایان این درمه از کلام حالا بحث با بحث خودون رو بنا شد که حجیب جعلی باشه و اعتباری باشه و امرو قلعایی پدیگه اجتماعی باشه و علمو آیا در این نکته بین علم اجمالی و تفصیلی فهم میکنه سآل بین اجمال و تفصیل فرمونیگ داره یا نه انصاف قضیه اگر ما در علم تفسیری گفتیم اجمالی هم همونطوره مثلا اگر شما به قیاس گفتیم که فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرام فلان حالا به قیاس گفتیم یا این واجبه یا اون واجبه اون رو مستنیم اجمال باشه یا تفصیل باشه مثالش لفت بسنیم شما با قیاس یک نفیشه گردیم چه به نحوه تفصیل باشه این خلان کار هر اون قیاس ارزش ازش ندره حالا به نحوه اجمال باشه بکر اون کار یا واجبه یا اون کار بیه واجبه به قیاس باز آنه بشنیم پس در دین جرده این علم اجمالی و علم نقطه اساسی این است که البته آسیاب قدس الله علیه به نظر ما حضوران ملتفت به نقطه شروع یه تعابیر خودشون پیش رفتن. فرق اساسی اینه که در علم تفصیلی به اصطلاح عند آسام از یک ادراک انسانلی است. در علم اجمالی عند آسام از یک ادراک ابزایی است. این دو تا با هم تفاوت یعنی به عبارت از این که قطری خون افتار این خب خوب من دیدم قطری خون افصار. من کار نمی این به چه مردار بودی یعنی اگه من دو ساینا رو با هم انجام بخورم یعنی با هم مخصوص کنم بخورم با قطعا هم حرام این مقدار هست یعنی در علم اجمالی این هست که کل واحده من اطراف به نفر ادراک افتاریه نقش ما دوست یعنی نفس ما میبینی که قصر خون افساد میگه از اینم هم اشتراف کن. از هستنم اشتراف این ما درست کردیم ولی یکی دیگه بیشتر نبود. پس ادراف میشه افلایی سوال اینجا این ادراف افلایی ای با اونش ادراف که میخواه فهم بزنه انصاف قضیه طبق اصل اولی و قلالی نه مثل فرقش در این فقط نقطش در ادراک انفعالی چون من می‌بینم خمره این انادی که مقابل من نجسه آب نجس خون به خود نجس خب اینجا این بحث داره دیگه در ادراک ادایی چون نفس ادعا می‌خواد بکنه و واقعیت نذاره به جهت ضرورت اصلاح می‌کنه مثلا میدن یه قضیه خون یا توی این انا افتاده تو این اینا. نفس میگه هر دو گواهی زنده خون به نفس از هر دو اجتناه بکن خیلی فرمون کنه این دو تا با هم داری اونجا وقتی ایمه همسیلی بود انسان می‌بینه، نمی‌گه نفسی دو جرمه میکنه می‌بینه این انا ملابیه زن را تایجه بر اجتناه با هم. اما روشن شد نقطه این مقدار با هم فرم میکنن این مقدار که در بابه مجمالی اگرادش اگرادی مدربا به مفصلی این بالیسال وام گیرد این جهادی شروع میکنه. اما از قبل آهلو برای تناژیوس این ادراک ابداعی رو با شرایطی کافی با شرایطی ادراک ابداعی رو کافی میگیره. چه مرداب تناژیوس به دلها رو بکه یعنی یک جویش نه ای یک هر دل میگیره با شرایطی که الان امروزیشallah که بیام. روشن کنم نتیاد. پس بنا اگر راحت با آزیات دارید چند اگر بگیم ادراک ادراک ادراکی منجده در هر دو طرف منجده اگر بگیم نیست در هر دو نیست پس تصیل مرموم آنهایی رو سنید مبنی که میگه لنگه چی میشه چی میشه به نماز ادراک ادراکی ای این هر چه نمازنه شهر نمیش حال میکنه نقطه پنده دقل فرمونید حد با مرموم آزیات میگه و... مثل مخالفت قفلیتی هیچ نمی کنی یا باید هر دسترم رو جایز باشه انجام بده یا یک کار من میوشه انجام بده یا هر دو بود تفصیل قائل نشید انصافا رم اما تقریب ما یه تقریب دیگری ما چون ادراک ابداعی گرفتیم به نظر ما ادراک ابداعی پرده نمی کنیم این طرف اون طرف بیری لیکن به بی این معنای یکی بود اشتناف نه ملاقیه در اگر گفتیم این ادراک انگایی فیش و اعتبار داره در دو سرمه اگر گفتیم این کافی نیست و دو نیست خوستان به نظر میرسه که در فرد و پس تفصیلی در اجمالی ما دونو اجمالی دونو ادراک داریم در تفصیلی و اجمالی یه ادراکی مشترشه ادراک شده این که آن نجاخت واقع شده تفصیلی علت تفصیل اجمال یه یعنی ارد اجمال هست وقتی اجراتی هم داریم در حکم در تفسیری امر اینطور میکنه نمیگه نه در اجمالی اجرام اجدام هست, هست. خب. این اضراح اگر اجدا آمد تو هر دو بیاد. اگر نیامد تو هر دو, دو در مقام کردن فرض میکنه اما در مقام اجراتی فرض ندارم ما من میتونم بزنم اگر شما بگید شما اصلا یا ادراک ابداعی به نظر اوقلال منجز نیست خب و در از آن فراموش کنید. اصلا گید در سیرو اوقلال ادراک ابداعی منجز نیست برای انتقال صورت به استله. این منجز او تو هرگونه بگید نه منجزه تو هرگونه منجزه تفصیل نرمایانه من نیست که غیر محله و انساب هن با ادراکات اوقلال به نظر ما یعنی با اوقلال نه آره یعنی آن نه آره مطابقه با ادراکات و اغلائیه. با اون شرایط کردم. ادراک افدائی دائما منجز نیست شرک میخواد این نیست که دائمان منجز باشه شرایط که رو انشاءالله این روز میخونیم طبق اون شرایط انصافا این ادراک افدائی منجزه برای گفتر کنم بله از یک طرف هم هم با نائمیه ممکن از شاره یک طرف رو ترخیص بکنه این درسته این ما قبول دلیم. بلکه دو طرف ممکن ترخیص بکنه بگیرم انجام بدونم انجام دونم چرا؟ چرا؟ اجازه بگیر؟ چون دروز ترخیص نذاشید من دروز میشه مطلب ترخیص نیست نه ترخیص میشه ممکنه میگه هر دو طرف انجام بده لکن علم میشه موضوع دیگه میشه تریجید معلوم و ملاقاب با. با بل ممکن؟ علم عوض میشه ما اول برس بخشیم علم ایجمان نصلا شرط اساسیش علم باید طریقی بایده فرض میگه بلکه فرض عرض میشه خوب دفت کردیم ممکنه اما این امکان معناش نه که شارع ترخیص بده در مخالفت علم اجمال نه شارع موضوع شعبتی بکنه ممکنه عرض بکنه دست شارع اغلا توی که برس ندارن ممکن است در یک جا شارع موضوع رو عین بگیره در یک جا واقع بگیره به رضا محمودائینی که از ثغو الکسیو محمودائینی که اگر دبران هم بشه خوب دقت در این ایجمالی بین دو چی خوب دقت کنید لکی یک چیز موضوعی باشه ایش خارجی باشه سوال یکیش عین موضوعی باشه یکیش ان خارجی باشه اونجا تحلیل نمیاره نه نمیاره نتوا به اثر مشترک شه اما ان سبع اثر خاص نمیاره مسقط یک لباسی که تو می‌ذارم یا قضی یا نجسته اما نمی‌دونم که نه یا قضی یقین دارم اگر تو شب نماز خون باطل یا به خاطر قضیه تو به خاطر نجاست اما نجاست علم داره شرطه معلوم قضیه علم داره شرط نیست در قضیه علم داره شرط نیست و به اصطلاح در قضیه به اولایان در صورت نسیان مفعلی نیست تامیشه حالا یادش این لباس نماز خون، تمام میشه. یا اصلا نمیگی که به اصطلاح از ذهن رفت، قفل کردن تو این نماز، تو این لباس نماز. که واقعا خودش این نماز باطل یاله. خب اگر نجس باشه قبل باطلی چون علم باشه نجس، یعنی این چیزه. یعنی معلوم باشه. اگر قصد باشه چون التفاظ نداشه، نسیان پیدا کرده بود، خب مرده شده نماز روز. منم به شکل داخلی شو نه لاخرش نه نسیان در قراری چون احراز نمیکنه کنه کلن در نمازی در لباس نمازونده که باطل نه اینجا معلوم عهده ماست نه ببینید معلوم عهده ماست ببینید معلوم عهده ماست نه معلومون نکسته دقیق کردید پس فرابر این در اینجا نماز شروطه چون نسبت نجیست علمی که ندارستون علم موضوعی بود نسبت به قسم که نسبتان زده کرده بود اگر قصدان باشه علم به اجمالی تعلوم یادتون نه به نمه حاش دقت بزنن ممکن است شارع هر دو تقسیم بده اما این تقسیم در واقع علم وجوی این تغییر حکمه میگه تغییر حکم یک میگه علم موضوعی است دو اصلا که شاره در باب انتصال ما علم تفسیری می‌خواد اینکه علم موضوعی باشه یعنی میگه من در باب چنجیز شرط می‌ذارم هم علم به تکلیف باشه هم علم متعلم این هم هر که مرحوم مجیسی فرم میده من رو حرفش قوار باشم میگه وقتی شاره گفت هر تحبه پر حرام من و قرینه یه چی؟ یعنی اونجایی در طور اجتماع که حرام در اینه مشخص باشه آیا ممکنه شاره این کار بکنه باید. این تصرف به شارهه خود قطع کردیم این تصرف شارهه شاره میتونه تصرف بکنه اما این منوش ترشید داره اتا به مجموعه نیست محضب عوض شد محضب دیگه شد و همینطوره اگر بگید یک طرف رو میتونی انجام بدی آزیه چی میگه؟ آزیه این ترخیص نیست این تحبود به جده لدن نترخیص اشتباه نشه شارعه میگه من یک طرف رو بدل از اون نتیست واقعی میدم طرف دیگه رو ترخیص نیست و حق هم با آزیه هست انصافا هم با آزیه هست این تصرفاتی میتونی شارعه رو بکنی پس بنابراین حق در مقام این است که ادراک ادراکی ما در علم اجمالی با شرائمشی مثل علم تفسیری است این ادراک افداری مثل این فعالی البته اثرش و مقدار وجوب اجتناب لباس ما بی این انا خود نمیشه چون علم اجمالی این ملابی افداری هیجه بر اجتناب هم ملابی احضر اطلاب نجست نمیشه اوشن شد پس تنجیز ادراک ابداعی به مقدار خودشه چون ابداال میشون مقدارش هم وجود اختناام می این خلاصه ای مطلب پس طبعا در این بحثی که داریم فرض علت تامه یا ساز علت کلم از زمان شیخ رو بعضی بحثی که علم اجمالی علت تامه یا من منش استرای علت تامه رو در علم تفسیری قبول نکردیم اجمال مطلب اینه که علم اجمالی یعنی ادراک ابداعی مثل علم تفسیری مثل, مثل ادراک, ادراک لکه به اون مقدار دیگه nah, چون دیروز اشاره کرد نه آخون واره به اخذزاده میگه جاری ترکیت میشه آخوند واره چون واره به میگه جاری ترکیت میشود مثل نایم. بعد عبارت ها به این اینجا و بعد هم فرض دارم یا حالا بعد لحظه خودمونه به اقوال نگیریم چون اون به جایی نیرسونه بعدش هم صحبت این راجعه به تا اینجایی مطلب پس در مطلب این است که ادراک ابداعی با شرائطی منجز مثل ادراک امفعالی لیکن چون امفعالی حدود داره اون چون امفعال شما با واقعه این واقعه اون تمام آثار واقع مقدار ادای شما وجوب اشتناب. اشتناب یعنی لباس نه اجتناب یعنی نخر اما لباست خور. لباس خود نجس میشه نه لباس نه وجوب باش اما اگه بهش یعنی نه نه مولا وجوب لباس اصلا در اباعم نه به حس لباس لباستون نداره اون وقت برگردیم به شرائط علم ایجمالی از کردن این مطلب رو مرحوم استاد در اینجا نایه بردن ما به موافقت ناینی از این جند 3 چاپ جامعه مدرسین از صفحه 79 به بعد پیشون شرائط تنجیز علم ایجمالی رو بردن تا تقریبا صفحه 80 و هم بحث لطیق دارم من میخونم بحثه آلا من طبعه مطلبیشون میگم کم و زیادی که داریم از خارج رو از ایشون نوشن مطلع پنجم در علم اجمالی اموری معتبره اما اول انیتون از تکلیف معلوم به الاجمال صالحن به آتحانه ایشون بحثی دارن که تک علم اجمالی در جلی ایجاد داعویت بکنه اما اگه ایجاد داعویت نکرد نیست این بحث رو من به اجمالی که ایشون فرمودن عرض میکنم اشاره تفصیلش رو در جایی. که ایشون ایم دارم تفصیل دادن و مرادشون در درانه هم بین محضوره میگن در درانه هم بین محضوره علم اجمالی اثر نداره چرا؟ چون بلاخت من یکی را انجام میدم از درانه هم بین محضوره جایی که انسان میدونه که این کار رو یا باید بکنه یا نکنه و تکیینن هم همون هم هست مثلا نمیشه یه باز باز نمیشه ساعت یازده یا و دفران در مسجد باشم یا نباشم این باشم و ن نمیدونه نردی کده تو مسئل باشه یا نردی تو مسئل نباشه یا ساعت پلان در خانه باشم نباشم نمیدونه عباس خودش بخونه که باشم نمشته یا نباشم نمیشه خب مرحب ماهیم یه علم جون داره چه این باعثی ماها درست بخونه به در موزه پنشن و در ساعتی آزه یا هر هست یا نیست یکی از این درست میگه چون در درمان هم به بگیه معناش که ادراک ابتدایی میخواد تعبد برسونه خب چه تعبدی من سابقا عرض کردم این تعبد ها برای که ازون روشن بشه مثل تشویق در باب بیان خیلی و بیان خودی تشویق و استعاره اینا مثل اون بگید شما آیا میتونید یک عمل واقعی رو به خود واقعی تشویق بکنید بگیم من که این روی صندلی نشسته مثل یک انسانه که روی صندلی نشسته خب درو من روی صندلی نشسته مثل شبیه یک انسانه که می نشسته چی که خودش واضحه دیگه توباد در اون معنا نداره بالاخره بالاخره شک داره اونایی که تا چی چی باشه ده کا طبیعی تساوی یعنی دو این مطلب اول ما انشالله شاء کرد که درست این مطلبیشون ایشون تمام رو انبعاست گرفتن. اما این علم جمالی در واقع دارم به این محضوره هم تأثیر داره تأثیرش حکم به تخیره چون من اخیران اشاره کردم یه بود تو توضیح تو بدیم طولانی ما ارز کردیم که دارم چند روز تخیر داریم یک تخیر واقعی داریم مثل خصال کفاره به این ترکیب ما جهی کندتر گفته شده نکتش دارید. یک تخییر ظاهری دارید مثل که دو تار باید متعارض بشید و به تخییر بشه. این اطلاعا تخییر ظاهری میکید. یک تخییر اصل عملی دارید. این غیر از تخییر ظاهری. اونم نفس ابداع میکنه. و نظام ممکنه شبگی نفس دیگه ابداع میکنه میکنه. نظام بحث داره. تخییر اصل عملی در هم به این محضوع نه. چون درست شما عملا یا هستی یا نیستی درست نه اضافه بر عمل آیا نفس شما ابداع میکنیم میگه خاله نوشتیز میتونی بکنیم دیگه بیشم هست پس تو تبقیه این ابداع مخیلی پس این حکم به به مقتضای اصل عملی معمول این تو که منحوم من معمولا فقط انبعاست گرفته عمل گرفته نسبت به عمل تاثیر نداره اما نسبت به حکم تخییر این تأثیر سه در بحث خودش چون ما در این جربا به این که ایشون فرمودن چون قبول نداریم بعد ایشون در درام بین هم بین منظور سه تا نقطه گفتن شده وقتی ما نظرین بحث ایشون نمیخونه آقای خواستن خودشون مراجعه فرمای ترجض داره به نفع هویت فازی ترجض ترجض داره به نفع اجداد یعنی تو مخیلی این فایده شه اصلا خاصو مختصری نیست دیگه یعنی مخیل تو مخیل چون نمیدونی یه <سؤال> اما مرحوایی میگه چون در هست که تو مخیری تو خود عملم مخیری واقعا مخیری روشن شو محدود این حالت من میگم من میگم یه تفخیرم داریم میاره معنی اصل عملي روشن شو این اختلاف به ما با آقایم یه یعنی این تضی پس... قرار یه بگم بود یه تخیر واقعی ظاهری به خاطر اون حالا مقدس اینه که تخییر به دو خبر روی به اصطلاح مبنای کلامی ولی میدونن اما به هر حال تکلیف داریم مشکل نداره انا امر الصانی دوم در تعریف تاثیر علم اجماعی این کلیاتی است فقط تکلیف لا یصاحب تکلیف لا یش تکلیف به بعض الاسباب علی الاجماع اجمالی این نکته لطیفی است البته ایشان توضیح هشدار با توضیحات شما خیلی واضح شد و اون این کلی که از شراطنجیز علم معماری این که ابتداا در یک طرف تکلیفی نباشه اگر در یک طرف تکلیفی بود علم معماری منجز نیست مثلا دو تا انار جلوی شما هست یکی شکننده هست هیچ شره شوهی نداره یکی شر میشه نمی‌دونید با بچه تازه و اورده نمی‌بینی انان اج سیانه بنابراین اصلا یه قضیه خون ای که از این دو تا میبسه. و پس یکی که معلومه نجاسته یکی مشکوک و نجاسته یک قطره خون افتاد اینجا اذن اجوال منجز چرا چون یک طرف که قطعا حضور اثبات نمیکنه نیست که مانه این طرفه که مشکوکه اساسا طاهر مالی نداره حرف آیه مینه چون تکلیف علاخذ طرف درست نمیکنه مشخص شد نکته فنی پیشونش ایجاد بدارد این که این چرا چون احتمال داره چون نجست معلوم باشه کار نکردید این تصویر مرحوم روی مبنای ما من تو اشتغالم باز میاد روی مبنای ما خیلی روشن شد چون یکیش ندفه انفعالیه این ادعای انفعالیه ما اینکه سر تنجیز ای میمونی ابداع نمیشه نفس ابداع بکنه یکیش که انفعالیه ابداع رو قبول نمیکنه میونه یکیه یکیه که تنهای ابداع نمیشه ببینید روی مبانی ما خیلی فکر می‌کنم خیلی واضحه بله چون علم اون اولی که چه این علم دومی خوب دومی دو نمی تونه ادعا بکنه میتونه به یک چون یکی افلی که ترسیل نداره یکی افلی که ترسیل نداره نیمیتونه بگه ابداعن اشتن ابعن هما اصلا نوبت به اونه میگذاره چون درست میکنه چون این هست واقعی هست نوبت به ابداع نداره به تنهایی هم که ابداع نداره تح... اصلا اونها تحلیل ما چون موعظه ای نوکتی تاییده اینه اجمالی تنجیز ادگاه ادراک ابتدایی اگر ادراک ابتدایی منجز بود علم اجمالی منجز بود لو فرضش اینجا ادگاه نمیکنه چون یکیش هست که انفعال هست مبال به ادگاه نمیرسه چون اگر جای انفعال بود دیگه نوبت به ادراک یعنی ادگاه انفعالی بود دیگه نوبت به ادراک ابتدایی نخواهر داشت این هم نکته سومیه که ایشون گفتن نکته دوم نکته سوم ایشان چون طولانی شده وقتی بحثش مطرح می‌کنم برای در جهات معلومه استاد این نکته رو اما فرقش رو او آوردم توی مصباح فردا از مصباح هم می‌خونیم اگر یاد آوین باشه قبل از علم اجوانی اگرم از معلومه استاد چند تا فرق نوشتن به عنوان اینکه انسان مخالفه به علم تفسیری می‌کنه اون جاش اینجاست. من گفتم مثلا فروغ بردگی اون فرو فروغikler فرو مصباح استاد نمی‌شن جاش ایجاد ایشون قبل از علم اشمالی آورده ان شاءالله مقرر آورده من نمیدونه. و اون اینکه که ای یکی نکته بسیار سابقه هم گفتیم در علم اجمالی تنگیزش منوط است به اینکه متعلق تکلیف باشه اما مطلب اگر علم اجمالی شد منجز نیست یعنی اگر اگه داره لباس مشترک این یک تکلیف معنی دیدن هم این میتونه استصحاب طارد به هفته جلوگیری کنه اما نمیگه با اینکه علم به میشون این علم اجمالی منجز نیست پس علم اجمالی شرط تنگیز است که مکلف یکی باشه روشنه اگر مکلف دو تا شو ایمه اجماعی منجیه بیت چرا نقصه اندینه چون در علم اجماعی میخواد ادعا بکنه تکلیف رو تکلیف من غیر ازونه نمیتونه ادعا بکنه تکلیف من غیر ازونه اما تکلیف من به اجتماع مبعه از اینا این هست تمام لوکالیتی که عرض کردیم به وضوح میاد نمیشه اون دو تا مکلف ادعا چون جامعه اینا له دو مکلفه روندی به خودشون داره اما می دو تا متعلم میذاریم ابداا بکنی سرشون سیخ وشاده. شاید مشکل چیه؟ مشکلی نیست میگن در بعضی موارد ما علم تفصیلی پیدا نمیکنیم. میگن می نشون نداره. مثلا یه کسی که این دو نفر یکیش به دیگه نماز جماعت بخونه. بالاخره این معلوم دنیا نماز خودش با صدای نماز امامش با سلعه. یا اون جونو بگه امامش جونو دیگه. معضل حکم میکردن که نماز درسته. این خصوصات داره. خصوصات داره. تو مصباح فردا هم هم کتاب هم استاد صل الله و